به نام خدا با سلام خدمت خانمها و آقایان جلسه قبلمون با تئوری شعور و هوشمندی حاکم و جهان هستی آشنا شدیم و در این رابطه تست هایی رو با هم انجام دادیم تست هایی رو که انجام دادیم که در واقع به کمک این تست ها بتونیم وجود این هوشمندی رو در عمل اثبات بکنیم در این دوره با تعریف‌های خاص خودش و با موضوع خاصی همراه بود که از طریق تجربه‌ای به نام اسکن که به دنبال اون همه اجزای وجودی ما زیر نظر قرار می‌گیره و مورد اسکن قرار گرفته معایب مشخص می شد و روی اون کارهایی انجام می گرفت با توجه به این که تعریف کردیم کل این مقوله در دنیای به نام دنیای ارفان تحقق پیدا می کرد اومدیم به تعریفی رسیدیم که بخش کمی و بخش کیفی این پله عقل این پله عشق و دیدیم که روی پله عقل ما کمیت ها رو داریم و روی پله عشق کیفیت رو داریم و روی این پله ابزار اینجا بی ابزاری در اینجا علم و دانش و فن و تکنیک و راه و روش و فن و استدلال و دلیل و برهان و ها رو داریم در اینجا هیچ ابزاری نداریم دنیای دل وجد و ذوق شوق حیرت و تعجب ایثار و فداکاری و این جور معقولات رو داریم و در واقع روی این پله پله‌ای هست که میخواد حقیقت هستی مورد بررسی قرار بگیره و در اینجا واقعیت پس واقعیت حقیقت کمیت کیفیت خب روی این پله متوجه شدیم که از نظر کیفی میشه به انسان نزدیک شد نزدیک شدن به انسان یا هستی فرق نمیکنه. وجود حالا وجود انسان وجود هستی ما میتونیم از بود کمیتی بهش نگاه بکنیم میتونیم از بود کیفیتی نگاه بکنیم جلسه قبل قبلمون از هر دو بود مثلا به هستی نگاه کردیم درسته درسته از نقطه نظر استدلال و دلایل به چه نتیجه‌ای رسیدیم به نتایجی رسیدیم از جمله که جهان هستی از چی ها فریده شده یادتون هست حرکت بعدش بعد از حرکت آگاهی یا هوشمندی به این نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم در عرض همین یه افته یادتون رفت خوب این از نظر نظری و تئوری بود از همون جا هم از نقطه نظر عملی با هم دیگه کردیم تجربه کردیم و اومدیم که ببینیم خب از این مجموعه بحث هامون چه نتیجه عملی میتونیم بگیریم یعنی چیزی که تو دستمون باشه خب الان این صحبت های نظری هم بد نیست اما از نقطه نظر عملی چی میتونه تو دستمون باشه و ما از این هوشمندی حاکم بر جهان هستی که در تئوری ثابتش کردیم در عمل چه بهره میتونیم ببریم خب حالا با یک نگاه یا یک بررسی متوجه شدیم که سلول دارای شعوره شعور سلولی یا هوشمندی سلولی میایم بالاتر هوشمندی خودمون حالا در ادامه مباحث متوجه میشیم که ما در ذهنمون بخش توضیح شعور و هوشمندی داریم که سلول ها رو چگونه تحت کنترل داره و شرح وظیفه تک تک سلول ها تعیین میشه پس یه شعور جز یه شعور کلتر اما بر فراز ما هم یک شعور دیگه قرار داره پس شعور سلول، شعور من، شعور بالا حالا خودش سلول هم دوباره زیر مجموعه خودش با شعورها و حوشمندی های دیگه ای طرفه مثلا شعور دی ان ای یعنی درصد دی ان ای یک شعور و هوشمندی. دوباره حتی زیر اون، زیر اون، زیر اون خب، حالا یک نگاهی که سلول به من بندازه به چه نتیجه میرسه؟ عدید یک سلول، به من نگاه بکنید و این سلول از هوش بالاتر از خودش خبردار نیست و اگر در اینجا قرار داره بدن من 100 تریلیون سلول داره هر سلول ازش بپرسیم میبینیم از هوش بالاتر خودش اطلاع نداره فقط ممکنه بگه که مثلا سلول کپپا به ما بگه که من نمیدونم یه فشاری میاد روی من برداشته میشه فشاری میاد برداشته میشه. اما نمیدونه که من با این راه رفتن این کل دنبال چه مسئله میگردم چه دانت جز راه کل خود را مگر هم کل فرستد رهنمونم بکش ای عشق کلی جز خود را که اینجا در کشاکشا کشا زبونم حالا ما هم نسبت به این هوشی که راجب صحبت کردیم همینطوری بیگانه ایم. و میگیم که ما اینجا چیکار داریم چیکار میکنیم چرا ما اینجاییم چرا صبح شد چرا زور شد چرا شب شد همون همون اعتراض یا سوالی که سلول کافه پایمن ممکنه داشته باشه درست شد یانه حالا ما تو این تحقیق و بررسی که داریم با هم دیگه میکنیم به این نتیجه به زودی میرسیم که این ارتباط شعوری ارتباط هوشمندی ارتباط این جز با این این با این و حالا زیر مجموعه یعنی وحدت شعوری خب یعنی در واقع وحدت شعوری یا به عبارتی وحدت هوشمندی این تیزی که میتونیم بگیم بعد روش کار بکنیم و بعد ببینیم که ما میتونیم بین اجزاء این هوشمندی ارتباط برقرار کنیم یا نه اگر این ارتباط نباشه چه اتفاقاتی میفته؟ مثلا ارتباط این سلول این بدن این شعور کیهانی حالا با زیر مجموعه دیگه کاری نداریم کاری نداشته باشیم در اینجا اگر ارتباط شعوری بدن و سلول قطع باشه با یک سلول قطع باشه اون سلول دچار اختلال میشه ممکنه دچار پرکاری بشه ممکنه دوچار کاری بشه یه حالتش میشه تعلیل رفتگی یه حالتش میشه سرطان این با این و اونم با زیر مجموعه ها در ای ارتباط این قرار میگیره حالا اگر ما با بالادست خودمون با هوشمندی جمعیمون در ارتباط قرار بگیریم چی میشه قرار نگیریم چی میشه این موضوع تحقیق عملی گروهیمون هست در واقع خب حالا اون دفعه اومدیم قرار گرفتیم به صورت آزمایشی قرار گرفتیم و راه دورمون هم که دیگه استارت خورد رفتیم توش قرار گرفتیم در همون جلسه اول ایده بدونه که بدونن این ارتباط اینجا برقرار شده دیدیم گزارش داشتیم که همینجا درمان‌های انجام شده حالا سوال می‌کنم از اون هفته تا اینجا تا این هفته تو این ارتباط راه دور چند مورد درمان داشتیم یعنی درمانه انجام شده دستونو بلند کنین دستون چند؟ یعنی درمان اتفاق افتاد از همین طریق ولی بله اتفاق افتاد اتفاق افتاد اجازه بدین میکروفون رو بدم خدمتون یکی دو تا گزارش بگیریم میخوام ازش نتایجی بگیریم به من دو سال تیروید داشتم دیوتروکسی مصرف میکردم بعد اون چند وقت من خیلی رفته بود بالا که پزشکم گفت اگه این دفعه ما اسمایش بدید بالا باشه انسولین بعد استفاده کنید ولی این دفعه که رفتم هم قندم هم تیرویدم اصلا خوب شده بله. الان جوازمیشم تو کیت بله بله جوازماشتون رو دارید تو دستتون خب اینجا بفرمایید استاد من در طی این مدت دو نوع هم ناراحتی جسمی رو تونستم مثلا برام پیش اومد هم ناراحتی‌های رو روحی یکی اینکه از بچهگی خب بعد از تاککی می ترسیدم از اینجا که رفتم بیرون شدیدتر شد تا به مرور اتصالت بعدی آرومتر شد استراب خیلی کمتر شد در کنارون از لحاظ جسمی هم روی پا هم قده و صدر اومد خیلی بزرگ بود ولی رفته رفته کوچک شد دیگه الان خیلی کچیک تر داره میشه بله چون این همچین موردی پیش اومد بله شد. خیلی خوب حالا مسئله رو که داریم من الان اگر سوال کنم کسانی که از هفته قبل تا این جلسه روی افسردگیشون اثر گذاشته شده دستشون رو بلند کنن چون این ها الان ماش کار داریم و میخوایم روش کار بکنیم خب روی میزان افسردگی حالا بیایم ببینیم که اینو داشته باشیم این تا من یک موضوع رو در ارتباط به همین وحثی که داشتیم تکمیل بکنم بیایم سراغ آمارها و یواش شواش به ارتباط موضوع شعوری در واقع بپردازیم و وارد ارتباطات دیگه بشیم وارد ارتباطات جدید بشیم همه موضوعات رو با همدیگه بررسی کنیم. خب، جهان اصلی هر آن سه عنصر اصلی میتونیم درش پیدا بکنیم. ماده انرژی آگاهی آگاهی همون شعور هوشمندی. خب یک ارتباطی هم بنینا هست. آگاهی یا هوشمندی نه ماده است نه انرژی. مثلا هوشمندی یا آگاهی فرکانس نداره، طول موج نداره، هیچ نمود فیزیکالی نداره. درست شد؟ خب، تبدیل ماده به انرژی و بالعکسش که خب معرف حضور هست. در های تئوری با هم بیننجی رسیدیم که ماده و انرژی از کجا اومدند؟ ماده و انرژی که در واقع همون انرژی هم دیگه چون ماده هم موج متراکمه انرژی متراکمه پس در واقع دوتاش یکیه از کجا اومده ماده و انرژی؟ از آگاهی اثبات کردیم با هم دیگه یادتون رفته بله؟ خب از اونجا اومده خب عکسش چی میشه؟ تبدیل ماده انرژی به آگاهی حالا تو تجاربمون پیدا میکنیم شما فرض کنید اگر یک تموری ناپدید بشه یا اینجا گزارش داشتیم که این چی بود؟ کجا؟ روی پا خب اگر ناپدید شد یا زائدهی ناپدید شد الان تمور مغزینا داریم مسائلی داریم که اینا رو با هم برسی میکنیم ولی فعلا فرض میکنیم اگر تموری زائدهی چیزی محوه شد چه اتفاقی افتاده؟ تبدیل به آگاهی خب به این صورته یعنی مکانیزم اینجا ما یک مکانیزم کلی داریم که اینه خب در واقع معجزه ما به, به چی میگه معجزه؟ اون چیزی که خارج از دو دو تا چهار تا باشه میگیم چی؟ میگیم معجزه اما این موجزه وقتی که میایم اینجا تزه رو بررسی می با هم دیگه رو با هم بررسی می میبینیم فیزیک و متافیزیک نداره جفتش یک چیزه اصلا ما متافیزیک نداریم متا هر هرچی رو نمیدونیم دونیم اسمش رو کداشتیم. چی؟ متافیزیک هر مطلبی رو که بهش اشراب نداریم میگیم این متافیزیکیه متافیزیک هم برای خودش فیزیک داره تز داره و قابل بحث و بررسی چون ما نمیدونستیم که اصولا ماده و انرژی از اینجا اومده عکسش هم خب نمیدونیم وقتی عکسش اتفاق میفته انگشت حیرت به دهان میگیریم که چه اتفاق معیر العقولی افتاده چه معجزه رخ داده در حالی که اگر ما این زبان رو آشنا بشیم برخورد بکنیم این خودش یه جو زبان علمیه یعنی این خود الان یه منطق بود یا نبود از اون جلسه که صحبت کردیم تو الان منطق بود یا نبود کجاش متافیزیک بود بله ما اگر اون هفته رابطه از اینور به اونور رو نتیجه گرفتیم دیگه درسته خب حالا در واقع موضوعی هست که از اونور به اینورش هست حالا از این ور به اونورش رو دنبال بکنیم اگر بود اگر شد چه نتیجه میگیریم پس نتیجه میگیریم که رابطه هایی هست که ما از اون رابطه ها خبر نداریم چون خبر نداریم طبیعتا قضاوت های ما چی میشه همش مخدوش میشه اشکال داره اون قضاوت های ما خب برگردیم سر یه جنبندی از تجاربمون تو این هفته تو این رابطه بتونیم با همدیگه نتیجه بگیریم خب ما با هوشمندی کار کردیم درسته؟ تو این هفته اومدیم در یک ارتباط قرار گرفتیم از راه دور بدونیم که کسی باشه خب حالا کسی نبود دیگه هر کاری انجام شده توسط هوشمندی انجام شده شما که کاری انجام ندادین یعنی قرار بود انجام ندید قرار بود خلصلا ب قبول دیگه اینا خب چند نفر ترس های دوران کودکشون اومد رو دستشونو بلند کنن چند نفر سابقه بیماری هاشون اومد رو دستشون بلند کنن روی چند نفر کار فیزیوتراپی انجام شد فیزیوتراپی که تعریف کردیم دیگه در واقع یه کارهاییست که شما هیچ اراده ندارید روش بر روی گردن و دست و پا و این حرفا انجام میشه چند نفر؟ دیگه موقع ارتباطات دیگه هر موقع ارتباط گرفتین دیدین که یک کار فیزیوتراپی داره رو شما انجام میشه بدونید که شما بتونید جلوشو بگیرید درسته؟ بسیار خوب چند نفر نسبت به قبل احساس آرامش پیدا کردن؟ خوب حالا این هفته اولمونه هفته دو هفته سه هفته آخر بینیم که این زمینه عمومیه خوب و توی مسئله اسکن بیماری ها روی این قضیه گزارشی داریم دوستان کسی گزارشی داشته باشه که بتونیم جان امجان همین همی هفته قبل که این کارو انجام دادم فاصله بعد از اینکه از کلاس رفتم متوجه شدم که با اسکنم وقتی که به طور کامل دستامو به صورت جلو قرار میدادم احساس کردم که نیرویی از در داخل دقیقاً دستام وارد بدنم میشه و توی قسمت پایین معدم داخل شکم یه احساس کردم خود خودی جم من ناراحتی معده دارم این جم میشه داخل بدنم به طوری که انگار شکم به قسمت پشت فقراتم چست چسمیده میشه یک رها میشه یه یعنی احساس عجیبی دخترم این عمل چند بار انجام شو بتوری که دیگه اصلا از اون بعد هیچ ناراحتی میدهی ندارم. بله. مثلا روی انگوشش هستم از ایت بیمار من دو سال دمی شدم بعد تکون نمیتونستم بدم. درست از همون جلسه بیمار با این اسکنایی که تو این هفته انجام دادم، این انگوشش هستم موردش برد. انگوشش چه تکون نمیتونستم بدین و الان دو شده. چون هم میبینم که داره حرکت بلده. بکنه. درست شدی یا نه؟ بلده. خب ببینی در واقع تأثیرات این هوشمندی، یعنی کاری که هوشمندی انجام داده اول شناسایی کرده و بعد اشکال رو برطرف کرده خب دیگه تو مورد این بهبودها ها گزارشی داریم زیانم بفرمایید الان توضیح میدم خدمتون که مسئله چطوریه و این قضیه رو الان واردش میشم هفته توضیح هم هفته قبل من دادم الان ادامه همون بحث رو خواهیم داشت در مورد بحث سرما یکی از اتفاقاتی که میفته صولا بیرونیزی بازسازی خود بیماری نیست یعنی اوت کردن بیماری نیست بازسازی بیماری است بر اساس اطلاعات حافظه سلولی یعنی سلولی که تنشی روش هست مسئله روش هست اونه که اطلاعاتشو ارزی میکنه یه مثال بزنیم چند نفر سابقه شکستگی استخون در سالها قبل داشتند اینجا توی اسکنشون روی محل شکستگی دیدن که اسکنه وجود داره چند نفر؟ ولی؟ شکستگی، ترق خوردگی، خوردگی این رو خب ببینید این شکستگی، پیس مال سالها قبله جوش خورده پس چرا باید مورد اسکن قرار بگیره؟ ببینید جوش خورده ولی محله این شکستگی تنش در خودش داره یه تنشی در این موضع وجود داره که در زمانی که این اتفاق افتاده بعدش حالا حال با مسکن و غیر پوشش داده شده زمان بشخورده و این جوش خوردن اتفاق افتاده اما تنش رو داره الان وقتی به حافظه سلولی مراجعه میکنیم میبینیم داره خبر از یک تنش و استرس در اون موضع میده این مسئله اسکنش میکنه نرمالیزش میکنه تنش این با اون وره چگاه میکنه هماهنگ میکنه کاری که روی فلزات هم انجام میشه مثلا رو فولاد که بر اساس عملیاتی تنش های مختلفی توش پیدا میشه یه حرارتی بهش میدن زیر نقطه زوبوین ها و بعد این حرارته باعث میشه همه استرس ها خالی میشه این نرمالیزه میشه و همگن میشه یک نواخ میشه خب در مورد ما میبینید که اینجا این اتفاق میفته نه اینه که بیماری اوت بکنه یا مثلا روی قلب یا اون چیزی که علامت که گرفتیم حالا یه آماری ازش میگیریم علام بازسازی میشه توی این مسئله آمپولانزا، یا سرماخوردگی خوردگی در این کش اگر میاره رو آثار بازسازی میشه وگرنه هیچ نشانی از ویروس آمپلانزا نیست علائم قضیه مثل ورم مقاطب بینی که آبیزه شروع میشه و مسئله دیگهی ای توی این رابطه ایجاد میشه که همه از جز بیرون ریزی ها و هیچ عامل ویروسی یعنی ویروس آمپلانزای به احتمال زیاد اینجا درگیر نبوده اصلا ویروس آمپلانزای نبوده فقط این قضیه اینجا اتفاق افتاده علت اتفاقش هم اینه که ما تا مثلا حالت سرماخوردگی پیش میاد ممکنه از داروهای استفاده بکنیم که علائم سرماخوردگی رو چیکار بکنه؟ قد کنه مثلا فورا مخاط بینی رو برگردونه سر جاش بعد ما دیگه آبرزش نداریم آبریزش نداریم فکر میکنیم سرماخوردگیمون خوب شده دقیقاً درمود این چی شد در حالی که این یه واکنش طبیع بدنه که مخاط ورم بکنه و پلاسمای خون اینا جدا بشه از این طریق ویروس رو از خون جدا بکنن بریزم جدا بشه ما اومدیم مداخله کردیم اینو بستیمش ویروسا اون تو موندن بعدن به نوعی دچار یه تنه درگیری شده الان این به عنوان یه آرزه منفی اونجا ثبت و ضبط شده شما تا اسکن میگیرید میبینید مخاطب بینی ورم کرد حالت آبریزه شروع شد در حالی که نیست ویروس آنفلانزای الان اگر آزمایش بکنن اونجا موجود نیست فقط یه هماهنگی رو داره بین سیستم های مختلف بدن برقرار میکنه. درست شد. جانم ببینید اگر تنشی باشه این تنش رو میاره بیرون. اگر تنش نباشه که خوب کاری نداره. خوب. از شما سلام. سلام. سلام. خوش شما من یه مشکلی در اوزی داشتم که از شرکتی پیش مماده. و در فرداش شد که مجموعش آموزشگر نداشتم. چرا آموزشگر نزدیک؟ فشارم افت میکرد و مجبور بسیار بزادم میشدم ما بعد پنشیش ما که از این بیماری را به درشت کردیم دوباره این مسئله پیشوند که درد اوزه هم بقدر شدید شده بود که می میتصدیدم هر آن فشارم نفته برای بمارسان بشن ناچارم رفته و از همون آنون استفاده کردم آیا خواهر من اشتراه بوده نتیزه چی شد؟ تسکیم میده کرد بله ببینید موضوع سر این که حالاته ما توی این مورد هیچ تداخلی نداریم چون حرکت این حرکت حرکت کیفیست حرکت کمی نیست یعنی ما توی هیچ مسئله کمی مداخلی نداریم شما میخواد استفاده بکن میخواید نکن اما تئوری قضیه اینه که شما هر بار اومدید با یه داروی با یه مسکن اونو چگاه کردین در واقع خفش کردیم. و اینجا این میقاید که بیاد و اون خودش خودشو بازسازی کنه خودشو تنشا مسائل مشکلات خودشو رها بکنه دوباره همون غذای ها ممکنه پیش بیاد ولی کار انجام میشه نمونه حالا بحث انجام کار ما روی هر نوع اسکنی اگر الان بیام بررسی کنیم که چه کسانی رو قلبشون اسکند شد تو این هفته دستشون رو بلند کنن بله؟ اصلا دوستانی که ارتباط برقرار کردن اول دستشون رو بلند کنن خب دوستانی که اصلا ارتباط نداشتن دستشون رو بلند کنن خیلی ها چون خیلی خوب که ارتباط برقرار نکردن خب حالا مسئله نیست مشکل اتباط که می سنگی بله شما تصور میکنید که مشکلی البته نه اینکه نگران بشید همه ما یه استرسهایی رو قلبمون داریم. این باعث نگرانی نشه من اینو خدمتون میگم همه ما یه استرسهایی رو قلبمون داریم. بنابراین شما هم فکر میکنیم که نه هیچ مشکلی ندارید ولی در واقع اسکنتی میشه متعده میشین که یاره یک مسائلی وجود داره. حالا ارتاتدی همین الان باز برقرار میکنیم که این مسئله رو دوباره دنبال بکنیم. توضیح من بدم خدمتتون در مورد قرار شد دفعه پیش راجبه، بحث افسردگی این همون چکلیش که با هم بررسی کردیم که این شبکه شعور گیانی که باش کار داریم حلقه های متعددی داره و از جمله که از این حلقه هامون نگری بود که وارد شدیم و مورد بررسی قرار دادیم اما بیام یه مقداری راجب بحث افسردگی که دفعه پیش راجب این کار کردیم آزمایشاتی کردیم با هم دیگه من موضوع رو تحت عنوان دلایل ادم احساس ارتباط یک دفعه پیش گفتیم چی؟ دو سه خب این رو با هم یه بررسی بکنیم که جواب خانم رو که اینجا اون سالتون رو فرمودین من حتی اون دفعه هم خدمتتون یه اشاره کردم الان دوباره مورد بررسی قرار بدیم الان افسردگی تست افسردگی دیدیم که در واقع افسوردی خودش تشش منفی داره این تششوه منفی در مدارهای توضیح میشه تششوه منفی شما حتما تجربه کردید وقتی با آدم افسورده برخورد میکنید بدون که حرف بزنید یا حتی بشناسید مثلا بغل دستتون نشسته توی یک مسیری شما وقتی میرسیدون اونجا میبینید که یه افتی پیدا کردید یا رو در رو میشید میبینید که یک تأثیری گرفت دیدی رفیع پیدا کردید با یه آدم سرحال سازنده روبرو میشین یا بغل رو میشینه شما می هم بعد از یه مسافتی بعد از این مدتی میبینید که شما هم یه جوری شارژ شدید با بعضیا برخورد میکنید میبینید که مسترب شدید ناآرام شدید با بعضیا میبینید که نه آرامش گرفتید آروم شدید اینا درستی یا غلطی تجربتون اینا رو میگه زبان اصلی انسان زبان تششعاته زبان اصلی انسان زبان تششعاته نه کلام کلام یه مرحله قبل از اینکه از ما حرف بزنیم تششوعم زودتر از خودمون دویده رفته حرفا رو زده به قدری فرمایید ما جلوتر از خودمونه تا ما میایم حرف بزنیم اون در واقع تششعات رو گرفته شده افسورد دل افسورده کند انجمنی را با چی؟ چطوری؟ نگفته اگه حرف بزنه از همینی که افسورد دل تجشش چیکار میکنه؟ اثر منفی میگذاره شما شده وارد یه خونه اتاقی بشید به محض که وارد میشید احساس استراب بهتون دست بده؟ شده وارد خونه بشید احساس آرامش کنید شده وارد خونه بشید ببینید سر شدین شدید وارد جای خونه میشید ببینید که ریلز شدید و افت کردین اینجا دیگه اصلا هیچ کس تو کار نیست همون همون در و دیوار تششعات رو در خودش ثبت و ضبط میکنه مکان مختلف بار تششعاتی مختلف داره شما برید بیمارستان یه تششو داره برید میدم شهرداری یه تش داره برید دارایی تش داره برید یه خونه روستایی میرید داخل میشه یه تششو داره وقتی وارد نمیدانم هر جایی که میشید اینا رو یبا شاش به هم میرسیم الان من این جلسه اولمون آی اول داره. اون نمیخوام ال همه اینا رو. چون به زودی خودتون زبان تششعات رو کاملا بهش واقف میشید و مترجه میشین که اینطوره خب این تجربه درست یا غلطی؟ خب حالا اون تششعات مکانی که شما در اون اتاق وارد میشی در اونجا وارد میشین میگیرید اون خودش تششوشو از کجا گرفته؟ از اون افراد کسایی که اونجا میرن و میان گرفته میشه اصولا ما یه بحثی داریم شعور در هنر خب شعور در ماده شعور در حالا همینطوری اینا رو یه و که مثلا تعریف نقاشی چیه؟ یه نقاشی چه چیزی رو به ما عرضه داره میکنه؟ فقط رنگ و روغنه بله یه موسیقی چی رو به ما داره میده فقط اون داره میزنه و ما یه پرکانس هایی رو داره میشنویم یه بار شعوری داره این بار شعوری و بعد توی اون بحث دیدیم ماده ضد ماده انرژی ضد انرژی شعور ضد شعور یعنی یه شکل کلیتری داریم که اون شکل کلیتر رو من براتون بکشم که الاته بعدا روش کار داریم باید این شکل کلیتر اینطوری خب اینجا شعور ضد شعور ماده ضد ماده انرژی زده انرژی و اینجا یه اول شعور هست که در واقع حالا اجزا رو اگه خورترش بکنیم به این میرسیم خب هر چیزی شعور و زده شعور خودشو داره شما یه موسیقی گوش بدین یه شعوری داره پشتش یه شعور دیگه ای داره خب اجزا رو چیزترش بکنیم در واقع اینو داریم و حالا خب میدونید راجع به موسیقی نمی چی بحث های مفصلتری وجود داره که توجیهات یا توضیحات یا میدونید دوستان یه مقدار در جریان در این بحث موسیقی قرار دارن که حالا اگرم قرار ندارین در جریان قرار میگیرید به هر صورت اینجا بحث شعور زده شعور و اون موسیقی شور سوارشه که ما مستقیم میگیریم یه زده شعور داره که پشتشه اونو به یه سکل دیگه میگیریم و در واقع توی همه چیز و همه حالت ها همینطور خب وقتی که در مکانها ما وارد میشیم دوباره همین در معرض این تششعات قرار داریم قرار میگیریم پس ربطی مستقیما به حضور و وجود انسان نداره و مکانها ثبت و زبط میکنن این تششعات مختلف رو جانم جانم نه دیگه اینه که ما ببینید یک مسائل پیچیده تو این قضیه است شما ممکنه تدایی رو تو این قضیه وارد بکنید ممکنه خیلی چیزهای دیگر رو ولی بحث آماری بحث آماری نشون میده که این صحبت در کلیت خودش به صلا اینطوریه و ممکنه بله ما یه جای بریم تدایی یه جای دیگر رو بکنه برامون خوشایند باشه یا تدایی یه جای دیگر رو بکنه اصلا بدایند باشه خب این خوشایند بودن و بدایند بودنش در به سیری چیزای ارتباطات شده ولی شما از کردم به طرق مختلفی در این رابطه براتون ثابت میشه که موضوع است حالا دفعه قبل یه ارتباطی رو برقرار کردیم که به دنبال اون تست افسردگی بود الان بیایم یه بار اون چند تا ارتباط رو با هم تکرار بکنیم تو این چند تا ارتباط یکی اسکن با شعور کیهانی اسکن با نیروی کیهانی و حوزه پولاریتی این ستاره رو یه بار با هم تست بکنیم و بریم اون تست افسردگی رو هم انجام بدیم براجب تشتد زنی و راجع به تشدد و قفل ذهنی و این موضوعی که علت عدم احساس رو با هم مرد برسی قرار بدیم خب دوستان من این توضیح کلی باز بدم چند تا از دوستان اون جلسه اول هست که تشریف دارن و در جریان کلی ماجرا نیستن کاری که فرار انجام بشه ما خودمون رو در مرز این اسکن قرار میدیم که حالا دوستان اتصال و اینا رو آشنا شدن دیگه میدونن ماجرا چطوریه ما در این اتصالی که قرار میگیریم فقط شاهد میشیم یعنی بی طرف فقط خودمون رو زیر نظر میگیریم ببینیم که روی ما اسکنی انجام میشه یا نمیشه این تنها کاری بود که ما انجام دادیم یا میخوام انجام بدیم درست شد یا نه مشکلی نیست که تو این رابطه دیگه برای همه دوستان مفهومه خب بستن چشم الزامی نبوده اصلا رفتی به بستن یا بسته بودن یا باز بودن چشم نداشت من تا اینجا گفتیم چون که ممکنه حواستمون پرد بشه یا در منظر یا در اینجا بهتر ما چشمار ببندیم که کاملا حواستمون جمع باشه خصوصا کسانی که تشدت زینی دارن تشدت زینشون شدیده حتما کارو کار بکنن که حواستشون جمع تر باشه این اسکن رو یه بار با هم انجام بدیم و باز ببینیم که چه مشکلاتی حذف میشه تو انجامش چونم؟ وضعیت قرارگیری فرد هیچ تأثیری در این ماجرا ها نداره جزوتونو دو سه بار خواهش میکنم مطالعه دقیق بفرمایید. نشسته استاده خوابیده تو اتوبوس تو کشتی تو اواپیما تو هر جایی که قرار داشته باشیم هیچ تأثیری در بسیلا ارتباط ما نداره مرتبطیم جانم وضعیت دستا پاها هیچی نداره وضعیت جیب وضعیت چی وضعیت ایش تصویری وضعیت بزیعت... وضعیت خب تشتوت دیگه همین همین نمیذاره که شما خب میدونم ببینید توجه بفرمایید ببینید یکی گفتیم که الان شما میفرمایید که من تا میام میخوام شروع کنم فکرای مختلف میاد هزاران فکر میاد نمیذاره شما اصلا بدونید اینجا چه خبره داره اسکن صورت میگیره یا این یکی از دلایل ساده و بازه عدم احساس اسکنه درسته؟ خب ما همینو میگیم اما یه خورده با ما همراه بشین بعد میتونید که تر شدید شاید من همی الان آمار بگیرم یه تعدادی از دوستان نسبت به دفع قبل تشدت هاشون شده باشه داریم کسانی تشدتشون آروم تر شده باشه؟ بله ببینید در واقع ما یه سری باید با هم همراه باشیم تا اشکالات فردی برطرف بشه قفل زنی شکسته بشه افسردگیه بره کنار الان من سوال کردم چند نفر افسردگیشون از اون دفعه به این بهبود پیدا کرده بهتر شده یه بار دیگه هم دستان رو بلند کنیم ببخشیدا من اینو میگم دستونو بلند کنیم به خاطر اینکه این دوستان بدونند باورشون بشه که این سری چند نفر مشکلشون تو این رابطه حل شده هفته بعد هم یه تعداد هفته بعدم یه تعداد بنابراین این فکر نکنید که مشکلتون لاین حله فکر نکنیم که حالا دیگه منتظر زمان رو باید بذارید بایستی که به اصطلاح این همراهی رو داشته باشین تا این کارها انجام بشه. خب آماده هستین ارتباط رو برقرار کنیم؟ جیانم. جناب استاد من وقتی که اتصال میگیرم به طور ناخودآگاه حرکات سرمو نمیتونم کنترل کنم. حرکات سارو بله اون که گفتیم فیزیوتراپی دیگه دست شما نیست و ممکنه کله شما رو به هر صورتی در, در. بیارن حالا 360 درجه بعد مورد دیگه ای که برام پیش اومه یکی از بستگانمون که منزل مابود صحبت همین کلاس اون نبود به من گفتش که به من یه اتصال بده و من نشستم آه. مقابل این بین اتصال دادم <تصفيق> من اینکه نشسته بود جناب استادی یک دفعه کاملا به صورت خابیده افتاد روی زمین بعد حرکتی که اصلا نفسش بالا نمی اومد ما گفتیم که با گیرگه شدید یعنی انگار که بغزی رو داشت بیرون می داد اصلا من انقدر ترسیدم تو درست سردر در خودتون چی؟ خودتون خود من سردرد شدیدی گفتن ده ده. ببینید اگه یادتون باشی گفتیم تا, ب... تا لایه محافظ کسی از این کارا نکنه حالا اسمیشون رو به من بدین اسم خودتونم هم بدین البته خوهر, خوهر ایشون شاگرد شما هستن خوهر ایشون شاگرد شما هستن و مراتب بالاتری هست ببینید قرارمون این بود که تا امروز که لایه محافظ میگیرید و عملا وارد چون با حفاظ وارد این مسئله میشیم کار عملی انجام ندیم حالا توضیح میدم خدمتون این ارتباط رو قرار بکنیم تا نتیجهشو با هم بررسی بکنیم خب شروع میکنیم من الان که دادم. به این صورت گفتیم که حالا تا اصل اتصال رو خوب تعریف کردیم، خیلی تعریفات داشتیم. چند ساعت راجع به موضوع صحبت کردیم. عیب نداره. شما الان چشم‌تون رو میبندید حواستون رو می‌دید به خودتون. ببینید کجا علامتی به شما میده. علامت در زمین اسکن مثل تیر کشیدن، ضربان زدن، درد گرفتن، سرد شدن، گرم شدن، دیدن نور، رنگ حرکت جران های تو بدن کار بیزیوتراپی که در واقع بدون اراده شما روی شما یک کارهایی انجام میشه مثل همین که ایشون توضیح داد و خلاصه هر چیده که اتفاق افتاد همین زیر نظر بگیریم ببینیم که چطوری میشه آماده هستین؟ شروع می‌کنیم خیلی ممنون مشکل دوستانی که روی قلب علامت گرفتن این رو تفکیک میکنیم که بهتر بتونن تشخیص بدن که مدرد. دوستانه که روی قلب علامت گرفتن دستشونو بلند کنن بله. خب این علامت که روی قلب مثل تیر کشیدن حتی مسیر این تیر کشیدن معنا داره جهتش مسیرش همه کسی که تپش قلب خب تپش شدید حالا اینه که سابقه داشتن سابقه ندارن نمیدونم ولی متوجه شدین که یه مسئله هست. درسته یا نه؟ خب، بله. یه چیزی رو در واقع متوجه شدن که یک کاری روش داره انجام میشه. خب، کسانی که روی سر، حالا شامل چشم و مغز و اینها. خب، اگر یعنی حالا گزارش بگیری بگیریم میبینیم که یک کار مشخص و دقیق و حساب شده در واقع در دریان بود. که من برای سؤال بکنم چه کسانی متوجه شدن یک بهبوت هایی؟ انجام شده متوجه میشیم که واقع کارای صورت گرفته خب کسانی که روی اما و عشا و میده و این بخشها علامت گرفتن دست رو بلند کنن بله بله خب روی دست و پا روی دست و پاها خب تو همین ارتباط کسی متوجه تغییری شده بله متوجه تغییراتی یکی دو نمونه این تغییرات رو بگیریم تا ما بخواهیم بفهمیم. من اصلا مشکلی که دارم اینه که اسپاس میدارم هفته پیشم گفتم که اسپاس توی این یه هفته خیلی زیاد شد و الان اولین باریه که خیلی آروم شد اسپاس تموم شد تموم شد بسیار خوب خیلی ممنون دیگه بله بزن یکی دو مورد گوش بدیم که دوستان دقیقا منظور محسله رو بفهم پس من کلا هر وقت که ارتباط میگیرم از کف دستم سوزش شهیدی اصلاسی میکنم مشکلی ندارم ولی باشه سیستم انرژی از دستم به بیرون میاد نه اینکه انرژی وارد دستم میشه کف دست راستم هم. همش این اتفاق میافته خب یه منطقه ای دایره ای شکل سوزش داره همش موقعی که ارتباط میگیرم نه من سوالم این بود که کسانی که متوجه حزو مسئله شده باشن یعنی مسئله ندوشن ولی نه. این همش اتفاق میافته خب خب این که برای همه کسایی که نور نور دیدن بله نور رنگ حالا اینا رو توضیح میدیم که نور و رنگ و اینا چه کار میکنن و حالا کسایی که جریاناتی رو متوجه شدن تو بدن خب و کسانی که کار فیزیوترافی روشون انجام شد خب بسیار خوب به عبارتی ما در معرض فرکانس مختلفی قرار میگیریم اون فرکانس ها برای بخشایی از وجودمون به عنوان یک کار اصلاحی لازمه شما اونا رو به صورت نور صوت اینجور چیزها برخورد میکنید باش خب. کسانی که استراب اومده رو کسانی که سنگینی سنگینی احساس سنگینی که این سنگینی ها در واقع همون استرس ها و تنش هستند هستن که الان لای لای آزاد میشن به صورت سنگینی میان رو و بعد خاتمه پیدا میکنه بعد از اون ما احساس میکنه همه که اشون اسپاس داشتن اسپاس و الان دیگه اسپاس ندارن این روند رو طی میکنن برگردیم سراغ تا ارتباط بعدی رو میخوایم برقرار بکنیم. خب در مورد افشوردگی توضیحاتمون رو تکمیل بکنیم. افشوردگی ما یه تعریف ساده ای ارهایه میکنیم. تفکرات انسان یا مثبت یا منفی. از اینجا شروع میکنیم. تفکرات منفی ایجاد تششعه منفی میکنه طبق همون تجربه یا همون چیزی که توتی دادیم تششوه منفی به دنبال تششوه منفی احساس پج مردگی پیش میاد و به دنبال اون احساس افسوردگی یا این طرفش تفکر مثبت، ایجاد برحال تششات مثبت و اون شادابی و روی مثبت و شکوفایی روانی اما این بروقت که میان نگاه میکنیم کنیم وقایه و حوادث بیرونی توسط سنسور های مغزی اون حواس باشه میان و از فیلتری عبور می این فیلتر عرباته مجموعه فیلتر که یکی از منترنش فیلتر بینشیه که دور سه راجبش صحبت داریم کار داریم بعد از این واکنش ذهن و ما داریم یعنی ادراک ما درک ما از اون مسئله و بعد از اون واکنش کالبود روانی یعنی احساس ما نسبت به اون مسئله این ذهن بخشی است که ادراکات ما رو بررسی میکنه روان بخشی است که احساسات ما رو مورد بررسی قرار میده بعد از اون ما واکنش معغزو داریم بعد از اون واکنش جسم داریم واکنش کاربود فیزیکی رو داریم بعد از این واکنش ها به زبان جسم در واقع ترجمه میشه و روی ما پیاده میشه حالا البته اینا رو بعدن بررسی مفصلی داریم و به دنبال اون واکنش های شیمیایی اما موضوع ما اینجا جا شکل رو حالا بذارید بره بعدن اینجا واکنش کاربود روانی یه واکنش تششعاتی داره خب همونی گفتیم افسرده یه تششعه داره سرحاله یه تششعه دیگه خب یه واکنش تششعاتی داریم که اولین واکنش ما رو تشکیل میده و به دنبال واکنش تششعاتی ما افسردگی تششعاتی داریم ببینید بیان ما با بیان دنیا روانشناسی یه مقداری تفاوت میکنه اولین مرحله ای که افسردگی یه نفر افسردگی رو شروع میکنه باش افسردگی تششعاتی یعنی شما بینید که طرف میره میره خوبه خوش اصلا شما فکر نمی‌کنید که افسرد. ولی تششعاتش چه تششعاتش تششعات است. بعد از یه مدتی وقتی همین فرد رو میبینیمش میبینیم که ذهنش هم درگیر شده بعد از یه مدتی بینیم که ذهنش هم که صحبت میکنیم ذهن شکوفایی نداره ذهنش ذهنیتش منفیه میگه میخنده شوخی میکنه نیمتونم میره میاد سرحال سازن، ولی وقتی باید صحبت می‌بینی ذهنیتش منفیه دیدید همچین کسی؟ ذهنیتش منفیه ولی میگه میخنده نیمتونم چگاه میکنه خب بعد از یه مدتی همین فردو که می درگیر شده دیگه نمیخنده دیگه نمیگه ذهنیتش منفیه تشویشش هم که سر جاشه یعنی اضافه شده این میره میاد شق و رق میره میاد شق و رق میره میاد ولی قیافش به صلا در واقع روان شد ذهنش و تجشعورش بعد از یه مدت میبینیم جسمش هم درگیر شده یعنی این آخرین مرحله جسم یک آدم افسرده را رفتنش حرف زدنش همه حالتش یعنی شما نگاش تشخیص میدید که این مرحله شدید افسردگی داره جسم درگیره اینو ملموسه یا نه خب ملموسه که یه آدمی که هنوز به این مرحله نیست را رفتنش حرف زدنش همه چیز تفاوت میکنه به معض اینکه این افسردگی تا این مرحله جسم میرسید دیگه شما میبینید که وا میره مثل خمیری که وا رفته باشه بعد میند که نوه نگاه کردنش نگاه کردن نگاهش به شما میگه که من افسردم و همه این حالت‌ها دیگه تحت تاثیر قرار میگیره حالا ما کسانی رو داریم که توی این مرحله تششؤاتی افسردن وقتی اینجا بهشون میگیم ابسوردی میگه نه من اصلا به یک آدم بگو بخند مثلا شهرت دارم ولی وقتی میریم اعماق تفکریش میبینیم که اعماق تفکریش چیه گرایش های منفی داره و تششؤش منفی در اصل در اصل تششعاتش به سمت منفی گرایش داره خب این مسئله هست که در واقع میخوایم راجبش صحبت بکنیم و کار بکنیم جلسه قبل این مسئله رو داشتیم اومده اسکم با نیروی کیهانی رو داشتیم اسکم با نیروی کیهانی دیدیم که یک نیرویست که وارد میشه و میتونه بیاد داخل اسکم بکنه کارهای انجام بده خب حالا الان یک مرحله اول اصلا خود این نیرو رو احساسش بکنیم برای چند تا از دوستان که جلسه غلط تشکیف نداشتن بعد اسکنش رو شروع کنیم بعد این تست رو داشته باشید خب دوستان یه خورده دست به آرومی حرکت میدین بعد ببینید دستتون با چی برخورد میکنه شروع بکنیم ببینید دستتون با چی برخورد میکنه چی میشه خب خیلی ممنون، متشکر دوستانی که متوجه شدن در رو بلند کنن؟ بله خب حالا این دفعه که انجام میدیم توجهمون هست به این که تا کجا وارد میشه درون ما کجا رو اسکن میکنه و چه کارایی رو دنبال میکنه خب یه چند لحظه که دستتون راحت بشه، آزادتر بشه من توی این فاصله قفل ذهنی رو توضیح بدم خدمتون ما دو تا نرم افزار داریم یک نرمفزاری در خداگاهی ما قرار داره یکی در ناخداگاهی ما قرار دارن این برنامه برنامههای برنامه های در واقع برنامه است که نوشته شده و اطلاعاتی که میخواد وارد بشه از این نرم افزار ها عبور میکنه و حالا تعییدی میگیره یا فیلتر میشه میمونه برنامه اولی رو ما بهش واقفیم الان میدونیم از چی خوشمون میاد از چی بدمون میاد دنبال چی هستیم اینا رو میدونیم اما برنامه در واقع ناخداگاهی بهش واقف نیستیم باورهای ما مسائل مختلفی و کلی در واقع روی اون برنامه ریزی شده که از زمان طفولیت نوشته شده دست به این برنامه کار آسونی نیست کار مشکلیه خب از دوران توفولیت اومدن ما رو برنامه ریزی کردن برنامه ریزی کردن برای عقل خب از اون همون دوران گفتن بچه آقل باش بچه عاقل باش بچه عاقل باش خب این بچه خیلی عاقله این بچه خیلی عاقله و بعد به دنبال اون باورهای دیگه مثلا در باور ما اینجوری برنامه گذاشتن که معجزه نیست متافیزیک نیست بعدا درس و مسائل مختلف دیگه هم به این مسئله کمک کرده برنامه‌ای که اینجا نوشته شده بر مبنای نه بر متافیزیک بر مبنای عقل اونجا گفته دو دوتا تا چهار تا حالا هر اطلاعاتی که میاد از این برنامه اولی اگه بگذره خب ما واقفیم که اینو میخوایم با متافیزیک موافقیم طالبش هستیم اما وقتی به برنامه دوم میرسه اونو برنامه دومی جلوشو میگیره میگه صبر کن این خارج از دو تا چهار تا است بنابراین اجازه عبور نمیده میاد اینجا اجازه عبور نمیده میگه این متافیزیکه این عقل نیست این عقلانی نیست حتی تجربه‌ای رو که ما روی عشق داریم روی تجربه عشق داریم تجربه عقلانی است تجربه است که عقل پیشنهاد میده و در واقع استدلالها و دلایلی که ما رو به سمتی عشق میده عقله میگه اگر تو نباشی من میمیرم اینو کی میگه؟ عقل میگه میگه اگه این نباشه تو میمیری پس بجم خب و بعد ما احساس میکنیم که به یه سمتی تمایل داریم در حالی که عقله که اینو داره پیشنهاد میکنه نه خود عشق اش. خود عشق اگه پیشنهاد بکنه میشه مثل داستان لیلی و مجدون خسرو و شیرین نمیدونم حالا رومه و و این چیزا ولی نیست چند تا دو تاریخ ذکر شده بقیه تجربه عقلانی عشق یعنی عقلی که یک مسیری رو جره راه ما قرار میده پیشنهاد میکنه بخاطر خاطر عقل آن جویت سودی برد لاعبالی عشق باشد نیخرد عقل آن جویت کزان سودی برد این برای سود میگه اگه نباشی تو میمیری بجم و اونم میجنبه. حالا میاییم وقتی که به این مقوله برمیخوریم میگیم که آره این موضوعات رو صحبت میکنیم چون موضوعات کلن اقلانی نیست در وقتی اول چی میشه؟ به این برنامه که میرسه فیلتر میشه سانسور میشه اجازه عبور بهش داده نمیشه هر چیز زور میزنیم نمیتونیم بفهمیمش نمیتونیم لمسش کنیم خب این برنامه نرم افزاری نیاز به شکستن قبل داره نیاز داره که این برنامه شکسته بشه و خب اونو ما در معرض مشاهدات قرار میدیم در معرض تجارب قرار میدیم بمبارانش میکنیم اینقدر این چیزایی بهش نشون میدیم نشون میدیم نشون میدیم می تا بتونیم در یک جای این برنامه رو چیکار کنیم این قفل رو بشکنیم و این برنامه رو تغییرش بدیم و این برنامه قابل تغییر هست خب این در مورد غفل زنی. البته این آزمایش رو به نوعی در هیپنوتیزم هم آزمایش شناخته شده ای هست. به این صورت که روی یک میز اشیای رو میشینن قیچی، لیوان و همین جوشیدهای رو یک گلدون یک نمیدونم چی میشینن و بعد بعدی رو که به حالت هیپنوز بردن میخوان ازش که به این طفی میز نگاه بکنه و به اون تلقیه میکنن که همه چیز هست مثلا غیر از این لیوان غیر از این گلدون غیر از این حالا هرچی هست بعد که از حالت هیپنوز درش میارن میگن خب به این میز نگاه کن که روی هست اون همه چی رو میتونه ببینه غیر از اونی که در واقع گفتن روی میز نیست و سانسور کردن براش در این مورد ما تا زمانی که قفل ذهنی ما شکسته میشه یا تشدت ذهنی ما همتر میشه و یا افسردگی ما برطرف میشه خب همین الان ممکنه نشه. ممکنه خودش زمان بخواد. خب هم زمانمون محدوده. میخوایم در یک مدت چند هفته ای با همدیگه یه نتیجه رو بگیریم خب درست یا نه؟, نه؟ یعنی ببینیم که لذو اگه قرار باشه صبر کنیم تا یکی کسی قل ذنی شکسته بشه، زمانمون چی میشه؟ از دست میره. ما باید آزماشای خودمون و اینجا امور فردیه کار فردیه همین شکستن قفل ذهنی و نمیدونم این ماجراها هست یکی کار جمعیه کار جمعیمون تحقیقاتمونه ما تحقیقاتمونو باید چیکار کنیم؟ انجام بدیم این کار فردیمون که خب داره به موازات این مسئله انجام میشه هفته بعد آمار میگیریم میبینیم که خیلی ها و این رده ها مشکلاتشون حل شده یا نزدیکتر شدن درست شد لذا از امروز که دوستان وارد کار تحقیقات عملی میشن و قرار این تحقیقاتو بیان و پیاده بکنن و نتیجهشو بیارند مسائل فردیشونو جدا بکنن از مسائل جمعی یعنی کار با دیگران چه تحقیقی می برای ما به همراه خواهد داشت اونو باید دنبال کنیم نه اینه که صرفاً مسئله خودمون چون مسئله خودمون ممکنه یه هفته دو هفته سه هفته زمان ببره درست شد؟ خب بریم سراغ ارتباط بعدیمون ارتباط بعدیمون این بار ببینیم که این نیروی تا کجا میاد خب و اگر جای گیر میکنه کجا گیر میکنه؟ اگر جای گیر کرد کجا گیر میکنه؟ اگر هم اومد تو اسکن آغاز شد در داخل چه جوریست؟ کجا میره؟ چه کار انجام میده؟ آماده هستین؟ خب شروع میکنیم؟ خب خیلی ممنون، خیلی متشکر خب دوستانی که متوجه شدن دستشون رو بلند کنن؟ خب کسانی که اسکن انجام شد دستشون رو بلند کنن؟ خب کسانی که مثلا تا روی قلب اومد یا داخل مغز اومد یا روی کبد خب ببینید همین جوری این اسکن ها شد دیگه درسته؟ خب کسانی که گیر کرد اومد یه گیر کرد دستشونو بلند کنن خب کجا کجا گیر کرد؟ میبینی که ببینید بله برم روی این ببینید کسانی که تا مچ دست مثلا اومد چه نجه میگیریم؟ خب کسانی که تا آرنج کسانی که تا شونه، کسانی که تا گردن درست شد یا نه حالا خب همون دیگه کف میشه تا اینجا دیگه میشه تا میشه تا مچ میاد تا اینجا خب حالا این قضیه که هست این جریان منفی مانع احساس میشه مانع احساس میشه ولی کار انجام میشه حالا ما یه ارتباط دیگه بگیریم یه ارتباط دیگه بگیریم مثلا اگه این دفعه تا مچه دست اومده بود دفعه دیگه میاد تا اونجا دفعه دیگه میاد تا اینجا دفعه دیگه میاد تا بالا دفعه این بهبود ابسوردگیه یعنی که دوستانی که مشکل ابسوردگیشون تا اینجا حل شده این روندشون پیاده شده دقت کردین یا نه روندی که روشون انجام شده اینه حالا شما تجربه می‌کنید چون رو دیگرا نمیتونید این ترجمه رو بکنید میبینید که اونها تا اینجا میاد بعد میاد تا اینجا بعد میاد اینجا بعد میاد اینجا بعد میاد بعد اونجا یه دفعه انگار یه نثوی چی شد متلاشی شد و در واقع اثری از اون قضیه باقی نمان جان نه این این چیده دیگه ایه؟ این شدن گرم شدن حالا این دفعه دقت کردیم تا کجا میاد چجوری بله نه این شدن گرم شدن یه ماجرات دیم خوب کیونم ببینید حسی پیدا نمی کنند الان توضیح دادیم یکیش قفل ذهنی خوب تشدت ذهنی آیا حواستون کاملا اینجا بود؟ یک کسی الان ممکنه مثلا فرض کنید اینجا نشسته اینقدر حواست این بر اون بر اون بر اصلا این جریان چیه؟ پاشم بسوزه متوجه نمیشه خیلی مواقع ما میریم اینه پامون ضربه خورده کبوس شده انگشت پامون یه جا اصابت کرد اصلا یادمون کجا خورده؟ اینقدر توی افکار مختلف و تشدد زینی بودیم بنابراین من این توضیحاتو دادم که بدونیم در واقع اون چیزی رو که رو خودمون قرار انجام میشه اجازه بدیم انجام میشه بالا متوجه میشیم یا نمیشیم جانم الان توضیح بدم خدمتتون. خب شما شنیدین که نیروی حیات نیروی حیات با شعور حیات یا شعور کیهانی فرق میکنه شعور کیهانی با نیروی کیهانی تفاوت میکنه خب در مکتب های مثل یوگا این قضیه رو اینطوری بهش نزدیک میشن که با تخیل و تصور میگن که پرانای هوا رو ما تنفس میکنیم میکشیم داخل و بعد میبریم تخیل میکنیم که میره اونجا تخیل میکنیم که میره اونجا یا مثلا در تایچی در تایچی میگن تخیل میکنیم که پرانای هوا رو با انجام حرکاتی که حرکات نرم و آرومی است این نیرو رو میکشیم به داخل با تخیل حالا چهار سال پنج سال ده سال روش کار میکنن و بعد معلوم نمیشه آخرین این تخیل یا نه واقعا پرانا رو دونستن بگیرن. ولی شما الان یه آزمایشی میکنید ما اینو استار زدیم دفعه قبل براتون الان دستتون رو تو هوا تکم بدین. ببینین که دستتون با چی برخورد میکنه؟ چشدون بندین آروم دستتون تو هوا تک بدین. خب خیلی ممنون دستتون به چی برخورد میکنه؟ دستتونو بلند کنین دوستان که متوجه شدن دستشونو بلند کنن بله دیدین که یک نیروی مثل اینکه دست شما تو سیالی حرکت میکنه این کارو حالا در منزل هم دنبال بکنید تو اینجا خورده خوب شرایطمون نامناسب و تنگ و خلاصه اینجوریه الان شما برنامه رو میتونید کاملا در اختیار داشته باشید امتحان بکنید و ببینید که دستتون در واقع مثل اینکه تو یک سیال حرکت میکنه و با این نیرو برخورد میکنه نه تخیل داریم نه تصور داریم این مسله در اختیارتون خب توی این مسئله که در اون دیها اعتقاد دارن ما که بهش نیازی نداریم اعتقاد دارن این نیروی حیاتو بتونن بکشن درون به سلامتیشون کمک میشه ده ها سال روی موضوع کار میکنن ولی ما خود خودمون میتونیم مستقیم در ارتباط قرار بگیریم نیاز به این کارام نداریم ولی شما تو همین تست نیروی کیهانی من چه فایدهی داره شو قبل از اینکه اینو انجام بدیم گفتیم این میتونه بیاد تو یه اسکنی انجام بده که خب حالا باش بشین بهتره البته ما کلن در ارتباط با حوشمندیه همین کارا رو میتونیم انجام بدیم ولی داریم در واقع شناخت به دست میاریم نسبت به این مسئله شناخت بیشتری در واقع کست میکنیم خب چیانم ببینید شما این حرکت دستتون رو تو اون سیال توی اون مایه احساس کردید یا نکردید؟ خب بله یه نیروی مقابل دستتونه همون حالا مثل که مقابل سیال حالا فرق نمیکنه با صورت هم می این کارو بکنید عقد. بله فرق نمی کنه. شما تونید برخورد میکنه اصلا تو تایچی حرکت بدن هم یعنی در واقع بدن هم به نوعی در معرض این گرفتن قرار میگیره منطقه جایی که بیشتر از همه در معرض این حرکت قرار میگیره دست خب خوب بنابراین بیشتر با دست و پا کار میشه تا سایر اعضا ولی فرق نمی کنه خوب یه ارتباط دیگه هم در رابطه با پولاریتی بفرمو دیانم بفهم. تای تیم روی... بله بفرمایید. بله ببینید خوب ما کتابه مختل تفکرات مختلفی داره ما که اصلا به این طرفا چیزی نداریم نه اینی که بگم بگین تو غلطه این هوشمندیه خودش به اون جایی که لازمه میرسونه لازم نیست شما روی شکم بخوابین لازم نیست اینو بیارید از اینجا اون تو که در یوگا میگه اینو ببرید رو تانتین تعبیر تانتین بدینش یا نمیدونم رو اینا توی این مورد در این مکتب خودمون این موارد کاملا منتفیه یعنی شما لازم نیست این کارا رو بکنید در مرز قرار گرفتن یعنی اینکه که اون مستقیم میدونه کجا کدوم چاکرا کدوم کانال کجا چه چیزی تحویل کجا بشه ولی وقتی من میخوام مداخله کنم من دقیقا نمیدونم آیا واقعا باید اینو الان به تانتین برسه به چاکرا اینو چی برسه به اونجا برسه دقیقا تشخیص چیه چقدر مشکله؟ تشخیص خیلی مشكله بنابراین بهتره که کارمون رو به همون هوشمندی روا بداریم و واگذار بکنیم و ببینیم که چطوری نه نشد خودش برای کسی که تو کوچه است انجام نمیده تا تو اتصالی نباشی خبری نیست توجه میکنید شما مطالب این قضیه رو به صورت کتاب بدین این تو کچه بخونه اتفاقی میفته بله یا نه مام همین رو میگه حالا شما امتحان میکنید امروز امتحان کنید شما یه جایی به حال برخورد میکنید همه جا مشکلاتی که اونجا وجود داره همین شما میگن روش کار بکنید اول این کنار بذارید اون همه ناله هاشو بکنه خب هر چی داره هر کاری میخواد بکنه ببینید چه اتفاقی میافته. هیچ شما حالا پاتونو بذارین جلو بعد ببینید حالا چه اتفاقی میافته؟ خب یعنی برایش ایجاد اتصال بکنید، چیو بکنید ببینید چه اتفاقی میفته. ما ما هم یونفقون از اون روزی آسمانیتون که توضیح دادیم، صحبت کردیم بهش انفاق کنید. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. تا شما مداخله نکنید هیچ کاری صورت نمیگیره. اگر گرفتیم برای من تعریف بکنید ما با هم هستیم. خوب؟ ولی به معنی شما حرکت می‌کنید و نظر نظر میکنید در نظر بازی ما بی خبران حیرانند خب به مرض اینکه اون نظر رو وارد قضیه میکنید، چی میشه میبینید که یک اتفاقاتی می옵ته ما خاک را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم خب حالا اینو می‌خوام تست بکنیم دیگه ببینید که اگر قرار بود خوشمندی خودش بکنه ببینید میکنه؟ میکنه؟ اگه کرده بود که اصلا انسان ماجراش اینجا نبود تا تا وارد حلقه ای نشیم که اون حلقه معرفی شد اعتصمو به الله جمیعن ولا تفرقوا خب تا وقتی که این پستم سکه بالعربت الوسخا تا زمانی که اتصال ایجاد نشه عقمون صلات مقیم مقیم اتصالی نشیم اتفاقی خاصی رخ نمیده اگه میگین میفته کاری نداره تست میکنیم یه سری رو میشونیم اینجا یه سری رو میشونیم اینجا خب هر دوتا تا میکنیم ببینیم که نجای آزمایش چه جوری میشه درسته جانم جانم حالا ما همین رو تست میکنیم دیگه همین تجربه کنیم ببینیم که شما الان ما یکی دو تا میزنیم دست شما از این ثانیه به اون ثانیه تغییر میکنه با هم اینا رو تست بکنیم دیگه شما یه سوگندنامه نوشتین دیگه خب قبل از سوگندنامه و بعد از سوگندنامه رو با هم تست میکنیم دیگه ببینید کمال و اینجا که استفاده از حلقای رحمانیت الهی هست بسم الله رحمان رحیم بسم الله رو با هم صحبت خواهیم کرد رحمان تسهیلات حرکته حلقه های رحمانیته توجه برمودین تسهیلات حرکت در حلقه انا لله و انا الیه راجعون رحمان رحیم زمانت حرکت به سمت اله راجعون، انا الله و انا اله راجعون زمانتشه حالا راجب اینا صحبت می‌کنیم. این دوره راجب رحمان در واقع صحبت داریم و حلقه‌های های رحمانیت که حالا راجب نوه استباد ایناش رو صحبت, اینا صحبت کردیم یکی از حلقاش هم که داریم با همدیگه تست می‌کنیم. همه اینها ها ظرف یکی دو سه هفته برای شما روشن میشه یعنی خودتون ظرف که دو سه هفته همه رو میتونید تحقیق کنیم. خب شما مراقبه که انجام ندادید اینجا که. ما که مراقبه نداریم. تخیل هم که نداریم. تصورم نداریم. ذکر و منترا نداریم. اینو نداریم. اونو نداریم. خب شما ببین که جد رحمانیت چی میتونه باشه. اگر. حالا نتیجه گرفتیم. بله. خب. به جایی نرسد کسب توانایی خیش. شما کاری رو که میخواییم با ارادتون انجام بدین چیا هست؟ به جایی نرسد کسب توانایی خیش الا تو چراق رحمتش داری پیش. میخواییم ظرف چند دوره با هم به این نزجه برسیم. شما با ارادتون به چه چیزایی میتونین برسیم؟ شما فقط تو کار زمینی میتونید با اراده برسیم. بس یه سری کارهای به سلا بالا رو تسلیم شدن قانونش تسلیم شدنه مثل حالا همینه که داریم انجام میدیم شما میتونید زور بزنید خوب بشین میتونید میتونید تلاش کنین خوب بشین هیچ کدوم نمیتونین ولی بله شاهد که بشین تو این حلقه شاهد همون تسلیمه بعد میایم با هم فلسفه اسلام و تسلیم و مسلمان رو با هم بررسی میکنیم در واقع برامودین شما با ارادتون اگه به من بگین چه کار میتونید بکنید من وقت با هم دیگه بهتر میتونید صحبت کنم تا یه جای میتونیم بریم تا یه خب شما بفرمایید که بعد از اینکه نیم ساعت در منای 20 درجه سانتیگراد نشست به چی میرسید خب پس به یک موضوع میرسیم به یه موضوعی میرسیم که میشه عرفان عرفان کمال عرفان قدرت. خب حالا این رو بعدا میخواستیم میگیم ولی خب مجبور میکنیم که ارفان کمال میخواد بگه از کجا آمدیم چرا اومدیم؟ کجا میخوایم بریم ارفان قدرت میخواد بگه چطوری فکر بخونیم چطوری منای 20 درجه نمیدونم چیکار کنیم چطور رو آتیش بریم و برگردیم حالا فرض کنید 50 سال من رو آتیش رفتم برگشتم بعد از 50 سال میان میگن که خب از کجا اومدیم؟ چرا اومدیم؟ کجا میخوام بریم؟ آیا جوابشو میتونیم بدیم؟ بله؟ حالا شما فرض کنید ساعتها در منهای 20 درجه سانتگرات نشستین مراقبه کردین الان میان میگن آقا اونو کار خودتو کردی به من بگو از کجا اومدیم؟ چرا اومدیم؟ کجا میخوام بریم؟ شما الان بگو من نیم ساعت تو پینای 20 درجه سانتیگراد نشسته بودم میگن خود نشستی؟ برای خود نشستی جواب سوال منو بده. درست شد یا نه حالا فرقه ببخشید من اینو چون جنبندی بکنم اینو حالاته بعدا باش روی صحبت زیاد داریم ارفان کمال یعنی شناخت کمال شناخت قدرت شما چی میخواید؟ به من بگو چی میخواید تا من خیالم نمیارون شما یه سری مسائل قدرتیست با هم مفصل صحبت میکنیم چکونه در دیگران نپوس کنیم تسخیر قلوب چگونه قلب دیگران چگونه زبان دیگران رو ببندیم چگونه دیگران رو سیاه کنیم سیاه بند و زبان بند و این مسائل جان بل، نماشگاش بله نماشگاش هم میذاریم بله نمایشگاه هم انشاءالا براتون جدا میگم با منابع و با چی و نمایشگاهشو رو از اون بر سال قرار بذاریم الان به دلائلی افتاده این سال خب یعنی شما مظاهر ارفان قدرت با عرفان و کمال رو باید به خوبی توش متخصص بشیم. هممون. باید به خوبی یعنی تشکیص بدیم که کدوم کمال کدوم قدرته و ما چی میخواییم. چی رو؟ خودمون بیام بشینیم فکر کنیم که کدوم رو و هر کدوم به چه درد ما میخوره؟ توجه میکنین. شما راضی هستی من فکرتون رو بخونم؟ نه. اون چیزی رو که بر خود نمیپسندی بر دیگران نیز همون شده رو بنابراین این اونی که شما میفرمایید بایست ببینیم که خواسته شما چیه شما به چی میخواید دنبال چی هستیم ما دنبال ما دنبال چی هستیم ما دنبال خودشناسی یا به عبارتی کمال خودشناسی خداشناسی حالا خداشناسی چیه خدا چیه خوب میگیم خداشناسی یعنی همون کمال یعنی خود را شناختن آشنایی با خوده. حالا ما از این زاویه چرا این دوره اینا رو داریم ؟ چون داریم ظاهرا با یه سی کار ساده با بچه کیفی خودمون آشنا میشیم تا این هم نکنید نکنیم یعنی امروز از شما خواهش میکنم همه دوستان وارد کار عملی بشن، کسی هفته دیگه دست خالی نیاد. خب به این دلیل اصرار داریم توجه میکنید به این دلیل اصرار داریم که حالا از باب کیفیت شناسی یعنی مقدمه چیه کیفیت شناسی کیفیت شناسی یعنی که شما بید ببینید که اصلا چه ماجرایی جدا از کمیت وجود داره بعد این میشه باب مقدماتی صحبتهای ما با هم دیگه و به دنبال اون بحث‌های دیگه بحث‌های دیگه همش تئوری عملی تئوری عملی تئوری عملی،, عملی بریم جلو این میشه خودشناسی و در واقع ما به دنبال این مسئله داریم با یه ابعاد درونی و بیرونی و کیفیت در واقع آشنا میشیم جانم جانم اجازه بدین از کنم خدمتون رحمانیت عام الهی که ما ازش در این حلقه ها استفاده میکنیم اولا آمه همه میتونن استفاده کنن ولی شما تجربه میکنید به یه عده میگید اونا میگن برو بابا این حرفا چیه یعنی دعوت رو رد میکنن نه اینه که اونها نمیتونستن استفاده کنن میتونن اما به عبارتی خودشون تمایل ندارن رحمانیت عام الهی در اختیار همه هست عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد این ترازو سنگ و گوهر را برابر میکشد درست شد اونم میتونه استفاده کنه اما شما برو بش بگو که بیا استفاده کن ببین چی بهتون میگه میگه برو بابا این حرفا چیه؟ اما یه مطلب دیگه هیچ کسی از هیچ کدوم از دوستان اینجا بیخودی حضور نداره توجه برمودین بس حکمت الهی حکمت الهی حالا اینا رو در دورای پنج به بالا تعریف میشه میخوام بگم که هیچ کسی بیخودی اینجا نیست و دعوت هایی هست که حالا یواش یواش ممکنه یادمون بیاد مثلا چند نفر قبل از حضور در این کلاس منو خواب دیدن چند نفر خب دیگه این طرف بله کی خواب دیدین قبلش شما کی خواب دیده بودین نه قبل از قبل منو که نیده بودین ببینید اجازه بدین اجازه بدین اجازه جایزه جلسه اولشونه که تشریف آوردن. دیشب منو که ندیده بودین قبلش. خب، دیگه اونجا کی خواب دیدین؟ بله. نه، من سال من این بود. بله. خب، حالا بله شما بله یعنی قبل از اینکه بیاد کلاس دیگه. خب، ببینین حالا بقیه‌ام بعدا یادشون میاد. تو ماجرای جانم بفرمایید. این رشته کلان اجازه بدین این رشته رو که واردش هستیم یک رشته 100 درصد ایرانی هیچ اقتباسی از هیچ کجایی نداره بخش عرفان که کلان ازن ارپانی است که در واقع 100 درصد ایرانی و شاخهای متعددی رو که استفاده داریم می‌کنیم از جمله همین شاخه 100 درصد ایرانی و با داشته های خودمون انتباق کامل داره فقط همین رو میتونم خدمتون بگم جانم جانم من سی سال قبل اتصالاتم شروع شد و حالا علت برقراری اتصالاتم صرفا اشتیاق بسیار بسیار بالایی بوده که در فهم هستی داشتم بنابراین الانم الان هم یه اصلی داریم که یعنی کمال مزد اشتیاقه این تفکر از ما ریاضت رو قبول نداریم مزد اشتیاق در واقع کماله حالا اگر یک کسی میره روی تخت میخدار میخوابه اونم هم میخواد اشتیاقشو نشون بده منطقه نمیدونه که همین اشتیاق میتونه گوشه خونهش هم چگاه بکنه؟ بهش نشون بده همین اشتیاقو میتونه درونش از این اشتیاق لبریز باشه ظاهرش اصلا معلوم نباشه. برمونین در واقع این مسائل فقط شاید ما نمیدونیم ما که هیچ ریاضتی انجام ندادیم قبولم نداریم و خب اون هم هست که می حالا خودتون تجربه می کنید به هیچ حتی تمرینی نمیخواد. یعنی یکی از در میتونه بیاد بگیم اینجا رو امضا کن اون امضام اینه که علت چیه امضه؟ امض اینه که من مطالبی رو. به سمع و نظر شما رسوندم این اینه شوره کیانی اینطوری دچار منیت نشی چون ازش حتما استفاده عملی خواهی کرد یه چهار تا مورد, مورد انجام دادی قнун برد نداره دچار منیت نشی گرفتار لا نشی و این هر من میگم گفتم اینا اینجارم امضا یه جاش جای امضا ماست دیگه یه جای امضا اینا ها شما هم اینو امضا کن که در واقع من بهت گفتم استفاده انسانی میخوای بکنی؟ درست شد یا نه؟ مطالبو خوندی؟ من بهت گفتم دوچار معنیت نشید، دوچار فلان؟ درسته؟ اینه، وگرن اونم نمیخواد آقا، بله، بده برو، مال تو، این میشه نظر بعد میره اینه شد، هست، بنابراین نیاز به ریاضتی نیست جا، میشه؟ میکروفون بدین خدمت دوست عزیزمون که من مطمئن میشم که درست میشتمم از باستم ببینم کسی میتونه از طریق مثلا این شبکه به درک و شهود برسه یعنی اون چیزی که فراتر از عقل و منطقه ایناست بتونه بله. درک کنه ازن هدف همینه چند افر سر و سفرهای داشتن توی همین هفته و اینا دست. یعنی سر و سلوک و سفری داشتن دستیون رو بلند کنن؟ ببینید اینقدر ما جزیات داریم که این جزیات رو نمیتونیم سوال نمی کنیم تا یواش بریم جلو عمومیتر بشه تا اصلا هدف همینه هدف است هدف آگاه شدن. تمام این بازیایی رو که داریم انجام میدیم بازیه ببینید من چند بار تکرار کردم که بازیه تمام این بازی رو که داریم انجام میدیم اینه که میخوایم اونجا به ادراکاتی برسیم به درک آگاهی برسیم منطقه اینا علف باشید تا این کار رو انجام ندیم اونم اونجا متوجه نمیشیم درست مثلا شاعر مثلا میگه تو خود هجاب خودی از میان برخیز. یعنی فقط مثلا یه ماه طرف از اون چیزی که در وجود خودش سالها ایجاد شده بوده رهایی پیدا میکنه خوش آن کسی که در این پرده بی هجاب رود تو خود هجاب خویشتنی همین علمم هجاب منه همین عقلمون هجابمونه یعنی چی؟ یعنی میخوایم ار رو پلی عقل برین رو پلی عشق پامونو گرفته خب عقل گوید شجهت حد است و بیرون راه نیست عشق گوید راه است و رفته من بارها عارف همیشه ار رو پلی عقل رو پلی عشق همین رو داره بشو ای اقل دست خیش از من که از چنبر برون جستم من امروز گرفتم گوش اقل و گفتم ای اقل خب همین ها چیزه دیگه مولانا باز میگه زین خرد جاهل همی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را یعنی در واقع مشکل است که زمانی که میخوام روی پل عقل شیفت بکنیم روی پل عشق عقل پامونو میگیره میگه اینجوری نیست اصلا همچی مسئله نیست نمیتونه وجود داشته باشه علممون پامونو میگیره دانشمون پامونو میگیره میگه چیکار میخوای بکنی این همه درس خوندی که آخرش بیای بگی که یه بشکن درست شد حالا یعنی یه میشه مثلا به اون مرحله ای که حافظ رسید دوام رسیدیم ببینید مرحله که حافظ رسید شاید شما از حافظ جلوتر بزنید دقت بکنید کما اینکه ببینید حافظ گفت که دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنن حافظ چند مورد کار عملی داشت؟ چند مورد کار عملی داشت؟ هیچ. خوب؟ مثلا مولانا گفت هر یک از ما خود مسیح عالمیم، هر علم را در کف خود مرهمیم چند مورد مولانا کار عملی داشت ببینید حالا یا ما خاک را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم ببینید اونا آگاهی گرفتن دادند شما میتونید اجرا کنید شما میتونید بزنید جلویش، مگه محدود کردن مگه محدودیت وجود داره چندان مدوید کندرین خواب شاگرد همان شده است که استاد یعنی چیزی نیست محدودیتی نه داشتن. کسی از این حد نمیتونه بره آگاهی مال انسانه انسان قراره چجوری رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند چجوری چجوری رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند البته بعضی ها فکر میکنند که این به واسطه علمه، نخیر، خیر ما تو بلو، و جلا هر جا نگاه کنی وجه خداست و آدمی به یه جای میرسه که اینقدر آگاهیش میره بالا که هر جا نگاه کنه چی میبینه؟ به دریا و بنگرم، دریا تو بینم به صحرا و به صحرا تو بینم به هر جا و بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رنا تو بینم بنابراین چطوری خب باید اگه آگاهی نگیریم اگه آگاه نشیم چطوری میخوایم خدا رو ببینیم یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بله خب توی این اتصالات قرار بگیریم تا خدمتتون عرض کنیم که هدف از این ماجره ها اصلا چیه من همین رو میخوایم خدمتون بکنم بیاید این بازی رو با هم ادامه بدیم این آخر آقاوت این بازی قرار ختم به خیرهای بهتری بشه نه صرفاً این مسئله این مسئله تو این رابطه خیلی سطح پایینه نسبت به اونی که میخوایم بگیم این خیلی سطح پایینه این ماجره های خیلی پایینیه در واقع خب بریم یه سآلاتون نگهت دارین یه تست دیگه بکنین خب اگر خاطرتون باشه تنشواله هست راجب حوزه پولاریتی صحبت کردیم و گفتیم که بدن ما یه سیستم الکتریکه و عملکرد اون وابسته به جریان الکتریکه قلب ما الکتریکیه مغز ما الکتریکیه تمام مایچای ما چیه؟ الکتریکیه و این جریان یعنی در واقع یک جنراتور برق داره و جریان برق داره این جریان یه جریان که داریم حوزه خواهیم داشت یعنی یک سلول در اون تبادلات یونی و الکترونی هست این جریان که هست پیرامون اون چی داریم؟ خوزه داریم حالا یکی از کارهایی که تو این ارتباطات انجام میشه در جهت اصلاح وجودی ما اصلاح تبادلات یونی و الکترونیه یعنی اگر این تبادلات اصلاح بشه جریان بهتر میشه حوزه هم چی میشه حوزه هم اسلام میشه بنابراین یکی از این مسائل تو این ارتباطات اصلاح تبادلات یونی و الکترونی بدنه. بنابراین حوزه پولاریتی چی میشه گسترش های خاص خودشو پیدا میکنه الان دوباره آزمایشی انجام میدیم و دوستان دستاشونو در 15 سان مقابل هم قرار بدن یه بازی کوچیکی باش بکنن ببینن تو دستاشون چی هست چی قرار داره نه شما دستاتون مقابل همدیگه کارتون با من نباشی چیان؟ بله حالا ببینید نسبت به هفته قبل گسترشش چطوریه خب خیلی ممنون مشکل دوستانه که متعزیشتن دستانو بلند کنن بله ممنون خب توی این اصلاحی که صورت میگیره در واقع که همینطوری شما هر بار تست کنید ببینید که این قوی تر منظورمون از تکرار این در این بود حالا با این مسئله در واقع اگه شنیده باشیم پولاریتی درمانی یا پولاریتی تراپی یک رشته دانشگاهیست در دنیا یک رشته دانشگاهیست و همین مسئله بود که انرژی درمانی رو در واقع سر زبونها انداخت و از زمانی که چند دقیقه قبل این حوزه ها کشف شد و تاثیرش در سلامتی بدن و اینها تعریف شد و شد رشته دانشگاهی در دنیا حالا نحوه میکانیزم این قضیه هم تو جلسه بعدمون براتون مطالبی رو از می کنم خدمت خب، خب یک روب زنگ تفریح داشته باشیم فقط خواهش میکنم یک روب چون می‌خوام از وقت استفاده کنیم یک ربع ساعت بیشتر نمونیم